رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام اززان بارز سلام و ادب احترام خدمت شنوندگان گرامی همراهان صدای امید برنامه برابری رو میشنوید قسمت 25 رو در خدمت شما هستیم بنده و جناب آقای ایران مهر گرامی در خدمت شما هستیم مباحث تقریبا بحث نقد نظری داروین رو تموم کردیم و همچنین نقد هایی که به, به بحث نظری داروین هستش مطرح هستشون رو مطرح کردیم و به اضافه مسائلی که خصوصا جناب آقای ایران میفرمودند در مورد عزیز دین نصفی و اینکه اساسا این نوع نظری ای چیز جدیدی نبوده و قبلاً هم بوده ریشه هایی داشت در شرق و حتی در ایران و به نظر می حتی چیز شبیه دزدی و سرقت علمی هم صورت گرفته چون اون فکت هایی که جناب آقای ایران میفردادن تقریبا همین بوده یعنی چیز جدیدی رو جناب آقای داروین مطرح نکردند ما قول دادیم که دیگه از قسمت 25 وارد مباحث اصلی و خلقت انسان و اون چیزی که شبیه ما انسان ها به وجود اومده. من اگه اجازه بدین وارد اون مباحثی که در واقع ریشه در نظریه داروین داره و یک نوع انحراف از نظریه داروین بود نمیشم چون چون که بحث به اون سمت بخوایم بکشونیم دیگه میمونیم و نمیایم اون مدای اصلی که قرار بود مطرح بکنیم رو اینجا مطرح کنیم. اولین انسان نما یا نوع در واقع اجداد ما و خیشاوندان ما انسان هایی که در واقع ازشون تو تاریخ هستش حدود دو ممیز هفت میلیون سال پیش هست با نام پارانتروپوس که در جنگل ها و مراتع زندگی میکرد این نسل دارای آرواره بزرگتری نسبت به بقیه اجداد و دلیل اون هم در واقع جویدن ریشه و پوشش گیاهان بوده این نسل بعدها حدودن یک ممیز دو میلیون سال پیش منقرض میشه ولی بسیار شبیه انسان هایی هستش که ما در واقع از نوع ما انسانها در سال بعدها با ناندرتال ها هم تا حدود یک هم پیدا میکنه حدود دو ممیز شیشتد میلیون سال پیش هم یک نوع گونه ای رو ما میبینیم که خیلی شباهت زیادی به ناندرتال ها داره این گونه رو هموحابیل نهادن که چهره شبیه تر به انسان امروزی داشت اما بیشتر شبیه در واقع ناندرتال ها بوده حجم مغزی او 600 سانتیمتر مکعب بوده و از این دوره هستش که انسان شروع به استفاده از ابزار سنگی میکنه جناب آقای ایران بله. یعنی دو, دو میلیون سال یعنی سنگ استفاده از سنگ به عنوان یک ابزاری برای شکار و برای زندگی که اینجا انسان سیرا... کارورز بله انسان کارورز احسان که ادامه تکامل اینجا حجم مغزی میشه حدود 850 سانتی متر مکعب یعنی اضافه میشه اه حجم مغز باید قیاس میشه بفرمایین الان حجم مغز انسان کنونی چقده حدود 2000 سانتی متر مکعب بله نزدیک به نزدیک به دویزاد. البته نهایت رو در واقع میگن بلد. چون حالا خواهیم رسید که حالا این تکامل میگه حتی انسان فعلی هم در حال تکامله 100 درصد انسان فعلی هم در... اون چیزی که زیست شناسا در واقع دارن میگن حجم نهاییه یه نظریه است میگن هنوزم حجم مغز در یک تا 5 میلیون سال آینده بیشتر میشه بله دقیقا حدود یک میلیون 8 میلیون سال پیش هم نخستین نسل شکارچی انسان بله به وجود میاد که به خارج از آفریقا یه مهاجرت گروهی انجام میده آثار این نوع انسان رو ما توی آسیا بیشتر میبینیم که حجم مغزی اینها حدود هزار سانتیمتر مکرب میرسه همون انسان راستقامته آیدو بله آرام آرام دیگه انسان نوع انسان در واقع قامتش راستتر میشه و پاهاش کمی بلندتر یک مومه 6 میلیون سال پیش چون ارز میکنیم میخوایم وارد مباحث تکاملی نزدیک به اون 140 هزار سال پیش بشیم، می‌خوایم خیلی زود بگذریم و بیایم به با باو اساسیمون برسیم. یک ممیز 6 میلیون سال پیش احتمالا اون چیزی که محققین میگن اولین اجدادی که به صورت پراکنده از آتش استفاده می‌کردن. که البته یه سری بقایای فقط قانی کنم یعنی این قطعی نیست. یه سری قانع قانه کننده از رسوبات تغییر رنگ داده شده در اثر آتیش چوب نیمه سوخته توی کنیا محل زندگی اونها در واقعی یافت شده. این نسل یکم پیچیده تره و پیشرفته تر از انسانهای قبل تره. تکنولوژی هایی که اونا به کار بردن تا صد هزار سال بعد نیست به عنوان تکنولوژی غالب مرسوم بوده. میایم یه میلیون سال بعد 600 هزار سال پیش. هومو هایدلبرگی ها که توی آفریقا و اروپا میزیستند حجم مغزی شبیه انسان مدرن داشتند. میایم 100 هزار سال بعد، 500 هزار سال. پیش. قوا... قدیمی ترین شواهد از ساخت پناهکار ما میبینیم. این خیلی جالب هستش که آ... یه نوع یعنی کلبه چوبی هست که توی حوالی ژاپن مربوط به این نسلی این حدود 500 هزار سال پیش هستش که پیدا شده. 400 هزار سال بعد. قبل یعنی هزار سال بازم میایم به جلوتر انسان اولیه است که شروع به شکار میکنه یعنی در واقع شروع به برای پیدا کردن غذا برای تغذیه شروع به شکار میکنه بعد حدود 325 هزار سال قبل هم قدیمی ترین پای یافت شده مربوط به سه نفر که در واقع ردپای شبیه های مدرن هستش که در یه دامنه کوه آتشفشانی توی ایتالیا هستش که دیده میشه. 280 هزار سال قبل اولین تیغه‌های سنگی پیچیده و حرفه‌ای که مشخصه که این روی این سنگ کار شده، تیز, تیز کردن این سنگ ها و ساخت این تیغه برای شکار که در این دوره توسط نسل بشر ساخته میشه. میاییم یه 50 هزار جلوتر 230 هزار سال قبل که اینجا هستش که ناندرتال ها پدیدار میشن این نسل از انسان توی تمام اروپا از غرب تا شرق و از بریتانیا تا ایران میزیستند. نسل اونها البته میدونیم که حالا بعدها بعد از به وجود اومدن انسان جدید و انسان باشعور ادامه پیدا میکنه ولی گفته میشه که حتی تا همین 25 سال پیش هم بودن اینجور انسانها ناندرتال ها بودن ولی حدود 25 تا 30 هزار سال پیش اینها نسلشون منقرض شد حالا دل... آمیزش خیلی جزئی ظاهرا با کرومانیون ها داشتن 6 درصد ولی بله, در... بله, بله دو نقشه ژنتیکی انسان های امروزین ما انسان های امروزی هم هیچ حدود 56 درصد از ژن های ناندرتال ها هنوز هم هستش به. حدود 195 هزار سال پیش هستش که انسان هوشمند توی دنیای وحش در مدت کوتاهی به سراسر آسیا و اروپا مهاجرت میکنه قدیمیترین بقایای انسان مدرن دو جمجمه یافته تو اتیوپی در این دوره هستش که حجم مغزی اونها در حدود 1350 متر مکعب سانتی متر مکعب ببخشید تخمی زده شده و اندازی گیری شده. میرسیم اینجا به سده هفتاد هزار سال پیش که اون انسان یا اون زن اولی مادر یا جده جده مستقیم همین انسان های اموزی که ما توی کره زمین زندگی میکنم که احتمالا توی سده هفتاد هزار سال پیش و در آفریقا زندگی میکرده که بهشون میگه میتوکندری اوا یا بعضی همون هوا نام میبرن شاید برگرفته از همون کتب آسمانی عدیان ابراهیمی هستش که ما در واقع این اسم رو میبینیم حدود 150 هزار سال قبل احتمالاً در این دوره هستش که انسان به نوعی قادر به بیان میشه یعنی اون چیزی که تکلم تکلم در مغز دیگه حالا مغز به بره گنجایشی بره رسیده که بله میتونه در واقع تکلم بره. بکنه و دکتر امروز بکنه. هم زمانی که میخوان تبار مادری رو در یک جمعیت انسانی مشخص کنن بلن. این رو در زیست ها و دانشمنده ژنتیک با عنوان ژنوم میتوکندریال مادری باد، مادری عنوان میکنن و بلد. اون یکی از شاخصه های سنجششونه این که بلد. شما فهم روی اون نیای مادری انسان ها روی حالا این چیز تخصصیه یک متخصص باد نظر بده اما خب روی همون ژنوم میتوکندریال کار میکنن در بیشتر میتوکندری امواج مادری, مادری, مادری که اب تخمین زده میشه که حدود هزار سال, سال پیشه ولی قبل از اینکه ما بیایم روی خصوصیات همین انسان رو مدرن کار بکنیم و آروم بیایم توی تاریخ خیلی آروم چون هیچ ای رو نمیخوایم بگذریم ازش یه سری سوالاتی وجود داره در مورد منشأ این انسان‌های اولی هنوز هم جواب قطعی به اون اندیشمندان دارید. ما اون سوالات رو مطرح میکنیم و شنوندگان عزیز در جریان این سوالات قرار میدیم و پژوهشگران عزیز. رو اولین سوالی که در حال حاضر مطرح هستش، تا تابحال حال پاسخ یعنی پاسخ قانع‌کننده و پاسخهای زیادی داده شده، فضیهای زیادی مطرح شده، نظریهای زیادی مطرح شده ولی پاسخ قطی به اون داده نشده. که دو تا نظریه تا به حال مطرح شده، نظریه عمده. طرفدار این نظریه اولینه که خروج از آفریقا بین طرفداران این نظریه معتقدند که انسان اولی از آفریقا خارج شده. طرفداران نظریه اول که خروج از آفریقا نام دارند باور دارند که اجداد انسانهای کنونی ابتدا در آفریقا پا به زمین گذاشتند و سپس در, جرح... در سراسر جهان پخش شده و جایگوزی گونه گونههای دیگر انسان شدند. اما یه نظریه دوم وجود داره که با نام چند ناحیه یک نظریه معتقدند که نه از چند ناحیه این انسانهای امروزی برخواستن که طبقا اجداد انسانهای کنون نه در یک مکان جغرافیایی خاص بلکه در سراسر زمین بر اثر تکامل گونه های باستانی به وجود اومدن و با گذشت زمان با همسایگان خود آمیختند که نتیجه اون تکامل گونه های باستانی به وجود اومده هستش و نتیجه این تکامل به وجود های امروزی هستش که البته اونها حتی تغییر و تنوع رنگ پوست انسان ها رو شاهد مدای خودشون میگیرم و معتقدم که این نظریه به در واقع منطق علمی نزدیکتر هستش اون گونه های پراکنده از آخر باید یک نیای مشترک داشته باشن دیگه بله دقیقا. اون کی بوده اینا معتقدن که نه اینا معتقدن که چون اون نوع اینا معتقد به تکثرن معتقدن که یک نوع تکسری بین انسان های اولیه وجود داشته یعنی به, به چند تا معتقدن؟ بله دقیقاً. یعنی معتقدن... چند جا آفریده شدن بعد هم شده که هر جا هرکی آفریده شده چهل و آفریده شده دی. الان نزدیک میکنم. اونا معتقدن که منشایشون ای از دویست و هزار سال پیش این, مثلا این، فرایند شروع شده. اینا معتقدن که یک فرایندی از دویست و, و هزار سال پیش تا 110 هزار سال پیش، یعنی توی هزار سال تو مناطق مختلف، اودش 6 منطقه اینا در نظر معتقدن گونه های مختلف انسان نماها یا انسانها اینها پدیدار میشن بعد دست به مهاجرت های مختلف میزنن و همین پدیدار میشن خیلی کلیه بنده به بلتقیقا... عنوان مخاطب عام، یعنی چی پدیدار میشن؟ یعنی چجوری با... مثلا یکی در آمریکا، یکی در آفریقا، یکی در آسیا دوجه. یکی اون آسیا... دیدار میشن جالبه که همشون هم چهشش کرو مضومین همشون هم دو تا پستان در بالای قسمت بالای سینه دارن همگی گی های گوششون شکل همه شکل همه. این؟ یعنی چی؟ بله اینا معتقدن که طرفداران خیلی پرپقررسی هم می داره. دونم اینا معتقدن که چون این نوع از انسان ها این از انسان ها میان مهاجات های مختلف و در واقع آمیزش های مختلف در واقع انجام میدن تا یک فراهند پنجاه هزار ساله به هم دیگه نزدیک میشن. خب نوعی که نمی‌تونن توضیح بدن بقیه شو میان شرح میدن که اینا میکشن واقعا واقعا که به قول شما این هنوز هم عرض کردم دیگه این اولین شبهه ای و سوالی است که هنوز بهش جواب و پاسخ منطقی و علمی داده نشده بس. لذا هنوز هم در واقع بین طرفداران این دو تا نظریه فاصله وجود داره و اختلاف نظر و مباحثه و بحث وجود داره دومی سوالی که مطرح هستش اینه که دانشمندان تعداد زیادی از اجساد آدم های باستانی انسان های باستانی رو پیدا کردند که با بررسی اونها به مسیر تکامل بیش از پیش در واقع پی بردن اونا به دنبال یافتن قدیمی ترین اجداد مستقیم و نزدیکترین خویشاوندان خیشاوندان به انسان بودند. یافتن، میتونید کستصاد اج انسان های کنونی در رسیدن به جواب سوال های اساسی مانند آنکه چه پیشرفتی باعث انسان شده انسان امروزی شده و چرا انسان های کنونی هوشمند کنونی پا به عرضه حیاط گذاشن به دانشمندان کمک میکنه مدعای این پرسش اون آنشمندانی که این پرسش رو انجام میده میگن که این نوجهش این نوجهشی که توی مغز انسان اتفاق میفته و تبدیل میشه به یک انسان و تمدن ساز و فرهنگ ساز این منطقی نیست از لحاظ علمی و هنوز هم به این جواب مشخص و روشن علمی دقیق و قانع کننده و مستند داده نشده یعنی درسته که در مورد مثلا جهش ژنتیکی مثلا صد هزار سال پیش رو مطرح میکنن یه جهش ژنتیکی مال چل هزار سال پیش رو مطرح میکنند این میگن که باز هم این نو جهش در شکل و نوع انسان واقعا منطقی نیست علمی نیست لذا این رو هم در واقع نمیپذیرن به بخش آسخان از اتاق فهمان اشاره میکنن که 15 دقیقه که برای این قسمت 25 در نظر گرفته شده بود اینجا به پایان میرسه ما شنوندگان عزیز رو تا آغاز قسمت 26 به خداوند متعال میسونم خدایی آرونی کردارد